به خدا باید شبهای قد بعد، نیست که این رو در مورد خلصفیه شبهای قد باید بکنم. این که میگن شبیه سر میگشت و در میگشت نعمه آدم ها این در نزد خدا نوشته میشه اون شبهای قدر توبه در قرآن میخونیم اینه که شب قبر که روح همراه با ملائک به ازن خداوند در انسان در مؤمنان فرود میاد و کل امر خدا رو به همراه میاره ازداد ملائکتو و روح به ازم و به کل امر یعنی کل امر و اراده و خداوند در چین شدی به همراه تن از زول روح و ملائک و قلب و جان و تن و روح ایک مومن فروت دیاد چیزیه که در سوره قطر ما میخونیم از صحابه شد حالا باز در قرآن در جای دیگری هم همین معنا هست که این شبقه یعنی این نزول روح با ملائک به چه کسانی فرود میاد که خداوند فرمود که به ازن خداوند روح به همراه ملائک و هر کدوم از بندگان مخلص خدا که خدا اراده کنه فرود میاد بنابراین پس اینطور نیست که در شده همه هنه افقاد بشری یا فسقون همه مومنان مشمولها در این واقعی باشن بزرگ من نه مومنانی مخلص و برخی از مومنانی مخلص که خداوند اراده کنه این شب با این تعریف محقق میشه که روح برود میاد به همقای ملاحق که کتاب حکمت قرآن و فرقان رو قلب آنها فروت میاره در حقیقت باید گفت در تاریخ اسلام این واقعه بر اولین کسی که بود آمد خود پیامبر اسلام بوده یعنی اون چیزی که واقعه مبعث هست یا سراغاز وای به حساب میاد در حقیقت با همین موقع شب قدره که قلب محمد فرود آمد نویل روح مناحق کتاب گرگان و حکمت فرود آمد یک جا فرود آمد برقلب ایشون و در تیه 23 سال آنچه که به صورت یک روح فرود آمده بود به تدریج در حقیقت باز کف محمد این این کتاب الهی رو که امر الهی و اراده حق بود رو باسخانی کرد این کتاب رو بلغ زد خوند خاندن این کتاب شد همین قرآنی که ما در دست داریم این قرآن در حقیقت باید گفت که باسخانی محمد از آن واقعه بود از آن کتابی بود که از اون امول کتابی بود که بر قلبش پروز آمده بود باسخانی محمد از این کتاب اونم بر حسبه شرایط و نیازهای انسانهای آن روز و عمد محمد در آن روز خونده شد یعنی به مناه نیست که لزوما هرانیچی که ما در کلمات و الفاظ آیات و قرآنی میخونیم این تماماً کلی امر خداست نه؟ اینطور نیست به همین دلیل خب قرآن خودش تحلیل داره تفسیر داره یا خواهیم به این مناهست پس کل عمر خدا در این الفاظ قرآن حضور ندارید بلکه باستی باید باست بشه یعنی باست خود همین قرآن باستی واسطه اولیاء خدا مؤمنان و عارفان باستی خانده بشه شکافته بشه و امر رب استخلاط بشه ازش داشت این چیزی است که معروف به تحبیل قرآن خب شب قدر همینطور که از اسمش پیداست قدر خب و فرهنگیما یه لغت جاوفداده است دیگه مثلا این قدر قیمت یک چیزی چیه شب قدر در حقیقت باست که شبیه که قدر انسان معلوم میشه اون قدر جاودانه انسان معلوم میشه اون قدر الهی انسان معلوم میشه در اون شد. قدر انسان چیه؟ لازم معارف دینی، معارف اسلامی ما میدونیم که انسان برترین قدر رو در عالم هستی و در کارینات داره و قدر انسان قدری است که خداوند همه مخلوقات خودش رو امر کرد تا سجده کنند انسان رو پس قدر انسان برترین قدرها در کاریناتی در حقیقت باید انسان حامل قدر مطلق عالم وجوده چرا خب برای اینکه حامل روح خدا هست خداوند باید بر خودش به او وجود بخشید از علم خودش در او نهاده اسما و رو در ذاتش به امانت گذاشته در حقیقت باید تو گفت شبقه اون شبیه است که انسان قدر الهی خودش رو میانه قدر الهی خودش مقام خلافت الهی خودش رو بیاره به بیان دیگر با است گفت شبیقهت در مفهوم کامل کلمه شبی که انسان خدای خودش رو چرا برای اینکه قدر وجود خداست خدا قدر وجوده ارزش وجوده اون گوهرهی وجوده و شاید شب بعضی که انسان به این قدر بیسته به این قدر دست پیدا میکنه خب حالا اگر گفته میشه که این شب شب سرنوشت است خب بالا دورم باشه چرا که برای اینکه سرنوشت انسان در خلقت ازلی چنین این سرنوشتی بوده یعنی خداول انسان رو خلق کرد تا خلیفه خودش کنه تا با او دوستی کنه تا یک موجودی همچون خود بسازه خب بنابراین باز سرنوشت ازلی و مطلق انسان معلومه چیه پس وگه شب اقت خبی شب سرنوشته سرنوشت به این مفهوم پیش و افتاده دنیایی که ماها ها متفسر که مجموعی از حوادث زشت و زیبا هست این نیست این ستیه تری مناشه سرنوشت انسان علوویت انسانه این سرنوشت انسانه این سرنوشت جابدانه انسانه و انسان قرار هست که به همچنگذی برسه و خواهد هم رسید ازیه الهات باید این قدر اصلا جبرم هست نا منطور جبریست الهی جبریست قدسی یک هدیه الهیست که انسان با سی رو در چنین شایی باید کشف کن و انسان به چنین خواهد رسید یا از راه اختیار و دین و ایمان و جهاد خواهد رسید یا از راه جبر و زور و ظلم و از واضی دوزخ خواهد رسید همه خواهد رسید و هیچکس نمیتونه که نرسه این قدر انسانه از کفر تا ایمالش خب با گفتن که محمد منوان بانی و شارع دین بیشون نخستن است که این قدر رو دریافت در چنین شبیه همونطور که میدونیم که ماه رمضان یعنی ماه قرآنه قوجش هم شفای قدره اما شفایی هستش که محمد به بهصد رسید به بهصادت رسید پس در واقع باید گفت اصلا رسالت محمدی خود معلول و نتیجه طبیعی این قدری بود که درش حاصل شد یعنی کسی که روح بود بیاد به همراه ملائک و کل امر و اراده الهی رو در خودش به ناگاه دریافت کنه خب معلومه که صاحب رسالت میشه است و به میشه که تا این قدر رو به همه جهانیان معلکی کنه. این مردمان ها من چنین قدر رو شنختم این قدر از آنی شما هم هست شما هم بیایید این قدر رو دریابید تا به قدر خودتون برسید تا صاحب قدر خودتون بشید. به خود سعادت میشه. همینطور که به مثال هر کسی که مثلا یک چیز رو در یه جای کش میکنه، یک مسئله علمی رو میفهمه، یک اختراعی میکنه، خب بلافاصله برای خودش اساسی رساعت نمونه دیگه احساس میکنه براش تیم اخترا و این خودش با جهانیان برسونه این غریزی خب باز چطور میشه که کسی که قدر ذات هستی خودش رو که خود خداوند هست رو بیا و بتونه صاحب رسالت و مسئولیت نباشه پس خود رسالت صاحب نتیجه طبیعی چنین ماقعیست هر که قدر خود رو صاحب رسالت میشه حالا به هر دعیجه که هر کسی قدر خود را شناخت صاحب رسالت میشه ببینید که سخنی از مولا داریم که می هر کس که قدر خود را نشناخ نابود است هر کسی که قدر خود را نشناخ نابود است خب این پس ما میفهمیم که انسان فقط این قدره یا خودشناسی خداشناسی است این در واقع واسه کسی که خدا را در خود نیافت یعنی قدر حیات هستی خود را نیافته و چنین کسی مثل این نیست وجود نداره خوب. حالا بیاییم و این مسئله رو برگردونیم به امر هدایت انسان ها که این مسئله قدر در امر هدایت بشری چه نقشی در طول تاریخ داشته خب تو امیزا مطالع شدیم که اصلا دین اسلام و شریعت محمدی کلن حاصل شب قدر محمده این دین اسلام حاصل شب قدر محمده محمد اسلام رو یافت اسلام اون قوانین و حقوق و هایی بود که روح اون را ملائک برای محمد بر رو بردن برای اون رسالت کردن خوب حالا امر هدایت ما دونید از تاریخی رو هم نگاه بکنیم که همینطوری که تو قرآن هست ما چند نوع هدایت در قرآن داریم یک نوع هدایتی است که انسان از طریق ربوبیت خود پروردگار این هدایت رو بریافت میکنه در بران هست یعنی کسانی که غبشون خود الله هست یعنی خود پیر و مراد و معلمشون خود الله است. و اینها رو از بیرون هدایت میکنه خب نخستین کسانی که غبشون الله بود خب انبیاء هلو ازم هستن, هستن. تو خدا هستند. که خداون از بیرون آنها رو هدایت میکنه اصطلاحیی هست طوری که و وحی دولت میکنه اصطلاحی که و اشکال مختلف یه هست خب این خودش یک رسالتی ایجاد کرده که رسالات نبوی است هدایت دیگری ما در قرآن داریم باز که خداوند بر آنهایی که میخوان که دین رو در خود خالص کنن در دین خالص رو در خود باکنن خداوند در قلب آنها نوری قرار میده که به واسطه آن نور هدایت میشن مثلا که واسه اون واسه انسان در زلالات مثل اینکه یک نوری در قلب پیغمبر هست که لا رو به اون انسان نشون میده خب این هدایت دیگری است که در حقیقت واسه کو این هدایت نوع اولیای خداست هدایت اول هدایت نبوی بود این هدایت هدایت ولایی است هدایت علوی است است از جنس امامت یعنی از بیرون نادر نمیشن از درون خود هدایت میشن خب این هدایت در واقع با اسکو هدایات هدایت هستش که در اولیای خدا هست مخصوصا در دوره آخراز زمان از و نیور هدایت برای این وراغ داره دوره نبوت خط شده خب حالا سالی هستش که هدایت آمه مردم که دور هست خب این را در قرآن ما داریم که هدایت مؤمنین هست که با می فرماد کسانی که ایمان آوردند، جهاد کردند و صبر پیشه کردند. و ایمان خود رو نفروختن و توکر کردن به خدا خداوند از نزد خودش رسول امام یا شاهدی میفرسته تا انها رو هدایت کنه خب این ببین امام رسول یا شاهدی که میفرسته اما منارداد کنه خب این امام رسول یا شاهد که یکی از همونایی هستش که خداوند در دل او نور قرار داده این که از اوناست نه که او عامل هدایت مؤمنان. خب، در فرهنگ اسلامی و در عرفان اسلامی به چنین کسی میگن مراد پیر میگن هر که واژه درست و اسلامیش همون امامه امام امامت در سنسل مراتب امامت البته که این اولیاء و امامان که در عرفان عملی به پیر یا مراد معروفند در حقیقت باز کفت در سه و در آخر زمان باسکوف جانیشینان و نواب اون امام زمان و امام مطلق حساب میشند در حقیقه. که خود اون امام مطلق خود اون نور مطلقه. اما در حقیقت این اولیایی که مسابق پیر یا مراد امامان هستند در هیچگاه باسکوف از اون ترکش میان نور این نور رو گرفتن. در هیچگاه باسکوف میگه که اسباب باطنی اینان با امام زمان این نور رو در وجودشون در قلبشون وجود دارد. و حملان نور هستند نور هدایت هستند خب بنابراین گفتیم که قدر وجود انسان همون قدر علوویت انسانه قدر مقام خلافت اللهی انسان هست و قدر مقام دوستی انسان با خداست خب اگه چنین هست بنابراین کسانی که به این قدر رسیدند این قدر برانها نازل شد آنها این قدر رو در خود محقق کردند تبدیل به صفات و مقام وجودی کردند و موجودیت بخشیدند یعنی اویه خدا خب پس اینها اینها در حقیقت بس کف خود اینها خود تجسطم و جمال قدر هستند جمال قدر الهی انسان هستن به این ترتیب پس چنین کسانی در میان مردم در حقیقت با کن خود شب قدر مردم پساد میشن آه؟ شب قدر مردم هستن در میان مردم راه میدن ولی شب قدر ولی در شب هستن یعنی پس هر کسی این ها رو قدر اینها رو در نمیابه هر کس قدر اینها رو در نمیابه الا اینکه به چنان اتش ایمان و معرفت و بصیرتی بسیده باشه که بتونه اینها رو در روز ببینه یعنی شب رو کنار بزنه و روز قدر مدوده اینها رو ببینه هدایت عامه مردم و هدایت مؤمنان یعنی کسانی که خودشان مستوی آن شب ولادت رو دریافت نگردند اون واقعی نزول روح و ملائکه نزول حکمت و کتاب و فرقان رو دریافت نکرده اند ها اینا واقعا از لحاظ نظر این خب اینا میسه که تبعیز خدا واضعه شده چرا برای اینها نازل نکرده اینطور نیست واقعا درست بالعکس یعنی کار عامه مردم در امر هدایت و رسیدن به قدر مطلق وجود خودشون اطلاقا بسیار ساده تره چرا اگر این با تجستم و جسمانیت و بشریت اینقدر قدر این هستن اگر اهل باشن استقاق رو پیدا کرده باشن میابند این خدا گفته استقاق چیه آنهایی که ایمان رو جهاد کردن در دین خدا و صرف بیشه کردن ایمان رو نفروختن خداون میگه برای آنها منت میگذاره و از نزد خودش یکی از این حاملان قدر و قدرهای مجسم رو به نظرشون بیبسه تا اونها رو هدایت کن خب این گست خب به اینا اسم شیش امامه در فرنگی ارفانی ما به اینا میگن پیگ یا مرام اینا در واقع باز کفت تجسم قدر مطلق وجود انسان هست چرا برای این که قدر رو دریافت کردن در یکی از این شبهای قدر اون قدر رو دریافت کردن و اونقدر رو در وجود خود محقق کردند. خب بنابراین برای پس شبه قدره آمه مردم در واقع ودود اولیای خدا هست هر کسی در حقیقت باست که یکی از این اولیای خدا رو کشف کرد باست گفتش که به قدر خودش رسید مثل که قدر خودش رو کشف کرد این مفهوم امه شب برای مردم هست خوبی ما در قرآن مطلبی داریم که یکی از مهوریترین آیات هست در امر هدایت مخصوصا برای مذهب مامیه خداوند می‌فرماد که ؤمنا گوش خداوند از شما سوالی داره به این سوال جواب بگی سؤال خداوند ن می آیا به نظر شما پیروی و اطاعت از کسی که پیروی و اطاعت از الله بهتر است، برتر است، حقتر است به هدایت نزدیکتر است یا پیروی از کسی که الله او را هدایت کرده است خدا اینجا ظاهران جواب مستقیمی نمیده ولی بلافاصله در درایات به شکل دیگری جواب رو میده این بسته اون میشه این سوال خداوند بعد این توبت تر میشه در چند آیه که اما بدانید که اکثر مردمان خدا را به زن خود میخوانند و میپرستند به گمانی خدای گمان در واقع ایده خدا را پیبری میکنند و میپرستند و میگن ما خدا پرستانیم حالان که آنها فقط دارند هوای نفس خودشون رو میپرستند و این تومد و است بر خدا و این شرک شرکه و ظلم عظیمه و خداوند عذاب میکنه اونها رو از بابت تومتی به خدا میزنن در واقع اونا مورید هوای نفس خودشون هستن یه هوای نفس اسمشون رو خدا خب و این پس خداوند پاسخ رو داد دیگه پاسخ موساز که بله پیروی از خدایی که شما تو کلدتون دارید اه؟ این به هدایت مجال نمیشه که باید پیروی کنید از کسی که خدا او رو هدایت کرده است. خوب. این همون امره هدایته و رایه که انسان به قدر خودش می دیسید خب این معنای دیگر قدر در فرهنگ ما مترادفه با مفهوم اختیار هست همونطور که در قرآن در نقطه مقابل قدر قضا قرار باره قضا و قدر قضا به مفهوم جبر قدر مفهوم اختیار خب حالا از این دید نگاه کنیم باز هنگ مفهوم به نوع دیگری بازدرک میشه خب این گفته میشه که در شبه قدر میشه خب در فرهنگ آمی بشر سرنوشت بسته این نوعی جبره دیگه فرهنگ میگن فرانی چند جوری سرنوشتش اینطور بود این اگه شد سرنوشتش بود اگه آقابت بشر شد سرنوشتش بود این یک فهم آمیانه اثبت به این قضیه بود از اون روح و چه به یافتن امام این هر دو تا قدره امام تجسسم قدره هست در واقع باست که تجسسم روحه در واقع برای همینه اوقع مثل روح الله ولی الله نحمت الله ید الله نور الله این الله اینا همه اوقع و صفات اولیاء خداست اینا تجسسم و از قدره انسان هستند این صفات خدایی مقامات الهی در مورد اینها تجسوم بشتری پیدا کرده و در حقیقت باست گفت قدر از این دیدگاه شبه قدر یا رسیدن به قدر وجود خود در یک امام در یک پیر و مراد به مفهوم اینه, اینه که انسان از قلم جبر خارج شده و به قلم اختیار رسیده و ببینید هر آنچه که نازل میشه بر انسان از درون برون اینها قضای الهی نمیتون میشه در اسلام. تمام واردات بر وجود انسان تطورت حوادث، وقایع درونی تمام شرایط زندگی اینها وارده های الهیست اینها قضای الهیست ها میشه آنین خدا انسان نهی که تو مثلا میخوای زن باشی یا مرد تا من تو رو بیافرینم بس کسی برسیده نخواهی نه این پرس شما بخواید عرب زبان به دنیا بیای مثلا فاررس زبان. از کسی نه برسش شماخواید لبه دریا میاد به یا نک کو به دنیا بیاید از کسی نه برده شما بخواید که یه قوم جهود به دنیا بیاید تو قوم پس اون بود جایی به دنیا بیاید. از کسی نه این شما بخواید در خانواده ثروتمان به دنیا بیاید در خانواده گشننه؟ پس اینا همه غذای علایی صود میشه. در منطظ سبیه بشرام بود این اینا جبر است شما انتاب نکردیم ما پرسید ن تو ما داده شد. این بهش میان سرنوشت اسم دیشت قضای قدر رو مفهوم شب قدر و این قدر دیگه گفتیم در وجود اولیای خدا هست تجسرون قدر الهی و قدر انسان استن، اینه که این سرنوشت از حالت جبر تبدیل میشه به حالت اختیار یعنی قضا تبدیل میشه به قدر قدر همون اختیاره یعنی انسان صاحب قدر که به خود رسیده یعنی انسان صاحب هدایت یا انسانی که اون رو باطن رو داره در واقع برد کسیه که خود سرموشت خود رو مینویسه رقن میزنه یعنی چنابراین که بالاترین ارزش و معنایی که در انسان نسبت به همه مخلوقات دیگه هست که اینه که انسان موجودی صاحب اختیار بس کسی که به اختیار نرسیده باشه در واقع برد که به انسانیت نرسیده و یکی از مفاهیم کلان این مسئله قدر همینه که انسان خواب وعدی اختیار میذاره، خواب وعدی انتخاب میذاره و قضای وجودش رو جبر ودود رو به قدر و اختیار وجود میکنه خب این به چه معناییه؟ خب این خیلی معنایی از زنی یعنی در واقع باید که خب آنچرا که هست و جاری هست رو تبدیل میکنه به آنچه که باید باشه ذهب به یون فلسفی هستی رو تبدیل میکنه به بایستی واقعیت رو تبدیل میکنه به حقیقت آنچکه هست به گونه به آرمان ها قرچونه خب، چیزی توقومی آنها میاد تمام زندگی خودش رو کوفیاکون میکنه ذات خودش رو دگرگون میکنه شرایط خودش رو نه لزوما تغییر انسان نمیتونه انجام بده امکانش انجام نمیشه نه خیلی. همه اینها با نور معرفت انجام میشه انسان از به معرفت نفس معرفت بر خود و حیات و هستی خود با نور معرفت با نور هدایتی که از منشه قدر وجود خودش از امام خودش گرفته چکار میکنه؟ میاد هستی رو تبدیل به بایستی میکنه آنچه که هست رو تبدیل میخونه به آنچه که بایست باشه آن دواقع زندگی خودش رو تبدیل جهنم تبدیل میخونه به بهشت به بیانه دیگه که این واقعی اتفاقی میکنه این هم مفهوم دیگری مقابل رضا یا جهن ببینید در قرآن ساخن از مومنی هست دست عباد الله مخلصیم که نبیدن تو باید زیاد کردیم در موردشون اخلاوا اینا اینجوری معرفی می کنه. که اینا میگه در جنات نعیمی فروردگار هستن و قرآده انها قرآده خداست و افقالی که از این نسل می دنه تماما افقال خداست برای همین عباد الله مخلصیم مسئول اعمال خودی هستن، و خداوند دست اعمالی که رو محافظت نمی‌کنه. بنابراین که اعمال خداست دیگه، وا که اعمال خودش محافظت نمی‌کنه. اینها از مسائلی کسانی هستند که قدر وجود رو خودشون رو یافتن و در حقیقت واسه گفتهش که همین مسئله اراد، تبدیل اراده اونها به اراده خدا همون قدری که انجام شده. خوب ما اول گفتیم که انسان قدرش اینه که خلیفه‌ی خدا بشه، یعنی صاحب اراده خدا باشه دیگه. خب سابقات چه شبیه؟ طبیه که بو همراه با ملایق میاد تا کل امر خدا رو لغو کنه در انسان امر خدا یعنی اراده خدا دیگه ببین یعنی در واقع انسان صاحب اراده الهی بشه بنابراین پس اراده فردی درش مهد میشه و به اراده الهی در این نشینه. این قدر این انسانیست که به قدر الهی مقدر شده و قدر در او محقق شده این ها اولیای خدا هستند. ببینید اینا ها و رسولان نیستن نوزی ها اینها ها تسانی که حاملان نور هدایت هستند که مؤمنان برای هدایت بایستی ها به نزده اونها برن و از اونها اطاعت کنند. ببینید در قلم رو به هدایت ما در فرنگ خودمون همون چیزی که اسمش تشیه هست تشیه یعنی اطاعت بیشنو چراه همان میدونیم که در اطفان عملی هم مرید هست نسبت به مراد خودش که این مراد یکی از این حاملان نور الاهیت و قدر الاهیست ببین خود این فردی که پیر هست یا اسمش امام هست خود از خود ارادهی نداره اراده او اراده خداست خوب. و اینه که این انسان به قدر الاهی خودش رسید بنابراین باز هر کس هم که میخواد برسه به قدر الاهی خودش بایستی چی بشه؟ بایستی؟ اراده خودش رو باستی از دست بده و اراده خودش باستی ذوب بشه در اراده الهی اراده الهی که در وجود امام حاضر اراده امام اراده خداست بنابراین پس اراده مرید اون مؤمن بایستی ذوب بشه در اراده امام خودش در اراده پیر خودش و اراده شخصی خودش در واقع بواسطه اراده امام خودش یعنی اراده امامش بواسطه در قلب و روح و جان او بنشینه این قدر مؤمنه نزول روح و ملاک برای مؤمنانی که دارای امام و پیر هستند همون واقعی تبدیل اراده آنها به اراده پیر یعنی اراده پیر در آنها بنشینه و حکم کنه یا این کوئی همون قاعده است روز به همین دلیل دیگه گفته میشه که یک مؤمن یک مرید باستی از پیر خودش اطاعتی بیرون سر داشته باشه ببین تمام سر واقعی در بیرون سرای اطاعته نه اطاعتی با چونج برای چی برای اینکه کسی که با چون سرای اطاعت میکنه مثلا به او گفته میشه پیرش بهش میگه که مثلا چای نخواد. خب اگر او بخواد با چون سرای اطاعت کنه میگه خب برای چی من چای و پیرش علتش رو بگه علت دینی علمی همدارن هر علی انگیزه هست بگه و او بعد اعتاعت ک و چای نخوره این هیچ عرضشی نداره. این نیست اون رایی که قرار اراده او تبدیل به اراده هر باشه. چرا برای اینکه وقتی او باتونون چراغ تعت میکنه در واقع میشه گفت اراده و امر پیر رو تبدیل میکنه به اراده شخصی خودش و تازه اراده شخصی خودش داره پروار میکنه یعنی اون منشو داره چاق این ناحتا باز از کی در را از خودش رو رفت میکنه ببینید؟ و چنین کسی یعنی این اتحادی با چونوچرا نتانا چنین اتفاقی رو مای اصل بلکه فرد به طبیل به یه قول منیت و انانیت میگونه بنابراین از آنجایی که ای که در فیل هست خود یک اراده بیشونوچراست بلکه اراده حق اراده بیشونوچراست بیشونوچراست پس برای رسیدن به بیشونوچرا با اصلی چرا بود. برای رسیدن به اراده بیشنوشرای خداوند باید که بیشنوشرا اطاعت کرد این مهمترین مسئله در رابطه ارخان عملی و رابطه مراد و مورید هست که بزرگترین مظالم هست خب ببینید اصلا مورید مورید یعنی کسی که اراده خودشو داده به امام و پیر خودش داده و اراده امام در او فرمان میرانه ببین میگن بود بنابراین وقتی یک مؤمن پیر و امام خودش مییابه در بی مریدی میکنه خب این یک ادعاست تازه یعنی این با این مفهومی نیست که مرید شده نه خیر او آمده است تا طالب مریدی بشه تازه طالب شده که مرید بشه خب مرید بشه یعنی اراده امام رو حاصل کنه و اراده خودش رو حل کنه در اراده امام این چه چونه ممکنه برای مرید شدن اطاعت شده. در سل اطاعت بشه در سیل اطاعت بتونسه تازه مرید میشه ها بس ما مافهمین کنین که راه و روشه نه مقصود کمال باغه است یعنی مرید انسان کامله همونطور که عباد الله المخلصین اینا انسان کامل هستند چرا انسان کامل هستند ما برای گراد فردیشون در اراده حق ذوب شده اراده خدا دلونه حکم میکنه یعنی مرید حق داره. انسان کامل یعنی مرید مرید کمال انسان یعنی مقامی برتر از مریدی برای انسان در جهان متصور نیست خب پس یک مؤمنی هم که میاد در نزد چنین انسانی به عنوان پیر او هم باسی به همچین مقامی برسه به مقام مریدی برسه نه اینکه ب من مریدی میکنم تا که چه شود نه خیر او اطاتی یکنه تا تازه مرید بشود یعنی ارادهش رو اراده فردیشو اون انانیتشون نفس امارش رو آه؟ خالهونه کنه نظم کنه در اراده‌ی تمام خودش اراده‌ی بمیشونه دکی اراده, اراده, اراده خلاص و اینونه است که یک مرید به حق خودش و به قدرت در وجود خودش میرسه یعنی اراده‌ی خدا رو در خودش میابه و از منظر و منشای چنین اراده‌ای هستش که تمام سرنوشت آنچرا که جبر میدیده رو همه رو تبدیل به اختیار میکنه یعنی قضای الهی رو در وجود خودش تبدیل به قدر الهی میکنه تمام جبره های رو در وجود خودش تبدیل به چی میکنه؟ اختیار میکنه در واقع باید که بر انسان کامل انسانی نیست صاحب اختیار مطلق انسان آزاد انسان آزاد آزادی روح نه آزادی فقط اعمال روزمند آزادی روح خب ببینید اصلاً یه کم در مورد اصلا حق میشود مسئولیت رو کنیم کنم مسئولیت یعنی بی علت بی, بی خب ببینید اصلا قانون علیت که اساس منطقه است منطق ریاض هست خب همه فلاسفه و منطقیون رو میدونن این جزء می اصوله میگوین منطق خودش بی منطقه یعنی میگوین که علت از بی این غایات الا بدیلاتی هست غایات منطق منطقی به پیمانچگی میرسه عمور که بر اون تمام سخنوران بزرگ تا کمال سخنگویی که مذهب اصالت خموشی میلسن. به مثلا مولانا ها همش اون خموشی میکنه یعنی خموشی کمال منطقه یا هم که به مثلا که فلاسفه معاصر مثل کانیشتاین که خودش از فلاسفه بزرگ منطق است ایشون نهایتا به خموشی و سکوت میرسه میگه سکوت و خموشی کمال منطق و خرده این از فلاسفه جدید از عرفای قدیم اینا همه به این حرف خدامندان رسیدن ببینید اصلا بیا ببین کل عالم وجود آها یکی از بزرگترین سوالهای فلسفی انسان اینه که عالم وجود از چی به وجود اومده برای چی به وجود اومده خب برای وجود داره ها برای چی به وجود اومده چرا به وجود وجود ماده برای چی وجود اومده ببینید پس کل عالم وجود ذاتش بر بی است. خدا برای چی خلق کرده؟ خلق کرده برای دوستوجا کردن. این؟ چون سران ندارد. برای خلقت پاسو پسندی ندارد. پس کل عالم وجود از جمله وجود انسان ها ذاتش بر بی علتی و بی چون و چرایی است. ذاتش منشأی به وجود آمدنش بر بی علتی است. بنابراین انسانی که ادعای بی چون میکنه در حقیقت به ذات بی چون می رسد. در حقیقت به ذات هر چه چون و چراس میرسه ذات هر چون و چرایی چون چرایی است به ذات هر علتی میرسه ذات هر علتی ما باز باز به علتی است اینا بعضی‌ها بعضی گفت به ذات و کن موجود میرسه این همون قدر ظلی بود این همون رسیدن به قدر مطلق بود به ازلیتی وجوده. آه؟ به خدای وجود اصلا به خود آرسیده با اینا می یه معنی دیگری از سر قدر و مفهوم قدر که بالای انسان امروزه بر روی زمین فقط در ارادت عرفانی و اطاعت بی‌چون این غرض حاصل میشه و به دست میاد در حقیقت چون و چرا نمیره میشه در حقیقت واسه گفت نزول من در حیات دنیا تمام میشه هزاران هزار علت تنزل روح و اون ازلیت و اون و اون مقام الان الین وقتی که در اسفل سافرین در عالم خاک نزو پیدا می همش تبدیل میشه به چونو و چرا به زنجیرهای های اللیت در حقیقت محفوم دیگر قدر این هستش که انسان از این زنجیره ها نجات پدا کنه و حیات دنیاوی خودش رو درش نقب بزنه برسه به روح ازلی و اخراوی زندگی خودش که اون معنای توفید هست یگانگی هست اون یگانگی که اینا چون چرا اصلا نه اصلا نیادی به چون چرا به احدیت الراز رسیدن یعنی کسادتون شرایطی های زندگی دنیاوی رو تبدیل کردن به یک قانون واحد الهی تبدیل کردن و به اون رسیدن در وجود این هم بیان دیگری هستش از مفهوم اطاعت اطاعت بیشونچرا با رسیدن به قدر اصلا هر چون چرایی رسیدن به حق هر علیتی رسیدن به حق حقوق و قوانین و قوائد بشری رسیدن به حق تمام احکام شریعت حتی ما دریای از احکام دینی و اخلاقی داریم آه؟ که همش پراکنده است هر کدوم برای خودش یک گوتی شده برای ما برای رسیدن به قدر گوهره روحانی تمام این احکام ها انسان متززم اینه که به قدر اینها برسه رسیدن به قدر اینها هم گفتیم که چه بونه هست اولین قدر رو انبیای الهی در گذشته تاریخ دریافت کردن به صورت نبوبت ها و بشر الله کردند بعد از اونها اولیای الهی آمدن که این قدر رو به صورت نور هدایت در خودشون یافتند و اینها حاملان قدر اشاهده هندگان قدر در میان مردم و هر کسی که بخواد در حقیقت قدر خودش رو بیابد و به قدر خودش برسه بایستی بیت بنظر اونها تو اینا مظاهر و تجسم قدر انسانه حالا اطاعتی پیشون صلو از اونها برسه به قدر خودش قدرش چیه رسیدن به الاده الهی ببین تنزل روح تنزل روح روح در قرآن ما میدونیم دیگه اومده که یعنی راست اوناست واسه اینکه روح چیز که امر راسته یعنی اراده خداست باز وقتی روح نازل میشه یعنی چی نازل شده اراده خدا بر بشر نازل شده انسان حامل اراده خدا شده اراده خدا اراده بی‌چون راست؟ چراست یعنی اینا دیگه مورید مطلق خدا هستند فقط اراده خدا در اون عمل میکنه اراده فردی ندارن دیگه ها خود مورید مطلق خوب یک انسانی موجود مطلق تقصیری که به پدر بسیاد است. پس مقام مریدی، مقام قدر مطلق انسان است.